بعد روی حسیری که کنار حیات داشت ایستاد. نور سپیددم دم باق خزان زده را سایه روشن می کرد. به نیایش ایستاد. مدت دراز دیگری نیز به راز و نیاز پرداخت. از توی دعنام و نکوین مزده یسنیم، فرست با یو خزرام نیدا سسنی، نیشام خیطه و دهسام اشیونیم. من نیک و نیک گفتاری را می ستایم، و به تیش اهورایی که دور کننده جنگ کنار نهنده خفتان، راهنمای یگانگی و آشنا کننده بپاکی است ایمان استوار دارم به آسمان روشن نگاه می کرد. از نیاکانش در آنجا خواست که کار دیشب او را که به پاس رهایی و آرامش روح انسانی بود ببخشند. اهورای مزدا و یاسف و هیچ سراسر شراسار پیدایشها بخشش اهورام داست و احساس میکرد که تایید و پذیرفتن آنها را میشنود. احساس خوب و گرمی نیز از آتش به زیر پوست سرد و درون خالی و خستهش موج زد و فرابرته های نمازش او را سبکتر کرده و آرامش تازهای به او داده بود. اثر حوادث دیشب کم کم از بهنش زدوده میشد. سرش را برگرداند و به درون اتاقک نگاه کرد که در آن ابوتراب هنوز در خواب بود برای یافتن افسانه نیز می توانست از ابوتراب استفاده کند وگه حساس این مرد هرچه بود حالا دست جاوید بود جاوید مطمئن بود که ابوتراب میدانست افسانه کجاست و میدانست باید هرچه زودتر ابوتراب را برای یافتن افسانه ساز بکند پیش از اینکه سالهای لعنتی یکی پس از دیگری پشت سر هم بگذرند و افسانه بزرگ شود از اینکه آنچه به سر لیلا آمده بود ممکن است به سر افسانه بیاید لرزید صدایی شنید و سرش را دوباره به سوی راهروهای زیرزمین گردانید از میان سیاهی‌های زیرزمین‌های سمت سوخته سایه‌ای را دید که می جنبید و ریزه ریزه پیش می‌آمد بدن ریزه و علیل رقیه بگم بود که هر دوتا دست را به دیوار گرفته بود و به خودش میپیچید و میآمد. وقتی نزدیک شد جاوید دید که چشمهای پیرزن دو کاسه خون و عشق بود. پیش از اینکه که جاوید فرصت کند که خبر خوبی را که پیرزن می‌خواست به او بدهد رقیه بگم ناله کرد که مادرش، مادرش، دم مرگ. جاوید پرید او را وادار به سکوت کرد. ابو تراب اینجاست، خواب است. رقیه بگم با گریه گفت، مادرش، مادرش داره تموم میکنه. چی؟ جاوید از ترس یک بدبختی تازه بلند شد، پیرزن را به عقب برد، به او فهماند که ابو تراب در اتاقک اوست و دیدن او در اینجا خطر دارد. رقیه بگم حالا نشسته بود، دستهایش را التماسوار بلند کرده بود، مادرش داره تموم می کنه. چشمش به راه بچهش خشک شده. جاوید کنار پیرزن نشست. با صدای خفه گفت. ساکت، همه چیز تمام شده. برو پشت دیوار تا برایت بگویم. پیرزن صدایش را برید. چهار دست و پا روی زمین خزید. پشت دیوار قایم شد. گوش کن، لیلا اینجاست. توی زیر زمین کوچک است. پیرزن باناله گفت، ها؟ آنجاست، آن پایین، برو ببینش، یا قمر بنی هاشم، من دیشب آوردمش، پاشو گریه نکن، اینجاست، می فهمی؟ چشمهای پیرزن میان اشک روشن شده بود، دومشتی زد توی سینه خودش، خدا را صد کرور شکر کرد. درابید گفت، پاشو یواش برو تو زیر زمین ببینش، خیلی یواش، بعد برو به مادرش مژده بده، و باید امشب یا فوقش تا فردا شب حرکت کنید. اینجا ماندن برای همه خطرناک است. می ماندن اینجا خطر مرگبار است پیرزن هل هلکی گفت می میدونم. می دست جاوید را گرفت بوسید. بعد همانطور که روی زمین و دست به دیوار می خزید رفت. احساس خوب و گرم او هنوز زیر پوستش بود. بعد از نیم ساعت تازه آفتاب زده بود که پیرزن خوشحال آمد بیرون و جاوید او را به آن حیات پس فرستاد. و بعد رفت ابو را بیدار کرد و او را هم در حالی که از خوشی با دمش گردو می روانه ساخت. جاوید پیش از انکه ابو تراب برود با او درباره خواهر خودش هم سربسته حرفهایی زد. قرار و مداری را پیشنهاد کرد. ابو تراب در حالی که دکمه های پوستینش را میبست و کلاهش را سفت میکرد گفت پول و تلاجات و رد کن بعد میشینیم میبینیم این دفعه چند مرده حلاجی جا جوجو هه, هه. احساس خوب درونش تا ظهر دوام داشت به کارهای روزانهاش و تمیزکاری حیات سرگرم شد به فکر دوتا خواهر خوراسانی بود که از نجات لیلا با خبر شده بودند به فکر آن شب بود که آنها می آمدند، لیلا را می بردند و از این بیغوله فرار می کردند. به فکر سریا خانوم بود که نیز لابد از رفتن لیلا و دیگران خوشحال بود و به فکر ابوتراب بود که گفته بود می میبینیم چند مرد حلاجی. فکر کرد همه جا داشت اندک نور نیکی می تابید و نوید آغاز درست شدن کارها می آمد. چون در روح خودش اندک نور و نویدی دمیده شده بود. اما بعد از ظهر از پشت دیوار باغ ملک آرا صدای گریه و شیون دو تا از کلفتهای آن حیات را شنید و بعد شنید که میگفتند فاطمه بگم مرده و باز دید که در اینجا حتی ناچیزترین بارقه نور امید و حساب هم دروغ به ویژه برای بدبختهای بزبیار مثل لیلا و مادر لیلا و خاله لیلا حالا رقیه به گمه علیل محال بود حتی بتواند لیلا را بردارد ببرد چه تبرسد بانکه او را بردارد و شبانه فرار دهد و ببرد به خراسان. سی و چهار صفحه صد با پنهان بودن لیلا در زیر زمین خانه خالی و با داغ ننگی که لیلا داشت و مرگ مادر لیلا در خانه ملک آرا و علیل و بیمصرف بودن رقیه بگم که تنها پشت و پناه لیلا بود و آن روز بعد از ظهر جاوید جالب نبود. به زودی ابو تراب می فهمید که لیلا را از خانه کزایی بردند و جاوید باید به خیلی ها جواب پس میداد. این نخستین درگیری پیچیده او با زندگی های اینها بود، نشست با خوی پاک و ساده خودش آرام ماند، وجود لیلا را آنجا ته زیر زمین ندیده گرفت، فقط یک بار اندک غذا و چایی به او رساند. گذاشت تا روز بگذرد، تا شب شاید بالاخره سرعی خانم بیاید و تکلیف او را روشن کند، شیون و حیاهوی زیاد زنها و مستخدمهای های آن حیات به ویژه وقتی جنازه را بیرون بردند دلیل آن بود که خود ملک آرا در خانه نبود. بنابراین گذاشت پیشامت های آن حیات و تشریع جنازه و دفن به وسیله آدمهای های ملک آرا سیر طبیعی خودش را طی کند. یادش بود اینجا مرگ و میر همیشه مردم را مدتی از زندگی های عادی کرموار خودشان سوا می کرد. مرگ هر مرگ تمام اهل خانه و محله را با جسم و روح زندگی بر و وسط یک سری مراسم پرچ می‌کرد که اجتناب ناپذیر بود و همه را مدتی سرگرم می‌کرد. داوید ساکت نشست صبر کرد. فقط امیدوار بود که لیلا ته زیر زمین از موضوع مرگ مادرش با خبر نشود چون معلوم نبود اگر متوجه میشد چه دیوانگی هایی از خودش نشان میداد. جوانب را سنجید در وهله اول امیدوار بود سری خانم را ببیند از او خواهش کند که به لیلا و خالهش کمک کند. سری خانم تنها کسی بود که میخواست و میتوانست کمک کند. کافی بود سرعی خانم پیغام به فرستت مشخودا داد کالسکچی میرزا بیاید و لیلا و خالهش را از این محله ببرد. یا می توانست به دکتر منوچه خان بگوید به آنها کمک کند. اما او امروز از سرعی خانم خبری نداشت. حتی خبر نداشت سرعی خانم حالا با مردن کلفت خودش و علیل بودن رقیه بگم با فامیل شوهر سابقش در تماس بود یا نه. جاوید از شب آتش سوزی تا کنون دکتر منوچهر خان را ندیده بود و یک نفته مرموز دیگر آن بود که این روزها جاوید نمیدانست که به سرعی خانم در آن حیات چه می و درد و بیماری او چه بود. اگر سرعی خانم هم مریض می شد و می افتاد چه می شد. در وهله دوم جاوید به فکر همسایه های دیگر بود. همسایه‌هایی که جاوید میتوانست از راه دیوار یا پشت بام با آنها تماس بگیرد از احمد و محمد بچه‌های قلوم علی میشد کمک بگیرد اما آنها ریشه و اخلاق حسابی نداشتند منحرف بودند و ممکن بود به هر دلیل و بهانه لوش بدهند از خانه حاج رجب علی هم که روبروی تکیه بود چشم امیدی نداشت چون اصلا خیلی گوشگی و بسیار پیر و پاتال یا جوانهای کاسب و بازاری بودند از خانه پشت باغ صرایا خانم خانه مصطفی قریشی یکی از رؤسای دارایی هم مدام صدای دعوا و قرمالبازی زنها و گریه و داد و فریاد بچه خورده بلند بود جاوید کسی را توانا و حاضر به کمک نمیدید حتی از داریوش پسر بزرگ آقای قریشی که تا حدی دوست دوستجاوید هم بود و تازگی ها پدرش برایش یک الاغ خریده بود و داریوش سوار اولاق شی که خودش توی محله پز میداد و به همه جا تاخت و تاز میکرد خانه پشت خانه مصطفی خان قریشی خانه آیت الله لواسانی بود که آقا و مجتهد و پیشنماز مسجد گذر وزیر دفتر بود و تمام کارها و مراسم مذهبی و عقد و مرگ و معامله ها به وسیله او و دامادش سید رزا مشیر انجام میشد. جاوید به فکر کمک گرفتن از آنها هم بود، اما با داغ ننگ روسبیگری بدی که روی لیلا چسبانده بودند، برای کمک گرفتن از پیش محله، چشم جاوید زیاد آب نمیخورد. در وهله آخر، اگر هیچ جان جاوید می توانست خودش کاری بکند. به هر قیمت شده، رقیه بگم و لیلا را شبانه بردارد، قفل در حیات را بشکند، آنها را به خانه دکتر منوچه خانه نزهت ببرد و از او کمک بگیرد. او دکتر فرنگ رفته بود و هرچه بود، از ملک آرا و آدمهای ملک آرا بهتر بود. میان یه و بیم و امید بود که سرایه خانم تنها در را باز کرد و آمد. دل جاوید از شادی لرزید. سرایه خانم سیاه پوشیده بود و چهرش در این تنگ غروب از بیماری و زردی حولناکتر از هفته پیش به نظر می رسید. به خصوص با گریه هایی که بیشک امروز برای دایه پیرش کرده بود و به راستی شکسته و پجمرده بود. آمد جلوی اتاقک جاوید ایستاد و اول حال او را پرسید. جاوید به او اطمینان داد که حال خودش خوب است و وضعش زیاد بد نیست. شاهی خانم موضوع مرگ و به خاک سپرده شدن فاطمه بگم را به او اطلاع داد. همچنین در این باره که رقیه بگم هم علیل و عاجز افتاده و رمق و امیدش را به همه چیز از دست داده است. بعد پرسید لیلا کجاست؟ جاوید محل اختفای لیلا را به او گفت سریا خانم چهرهش در هم رفت گفت: کار خیلی خطرناکیه کار خیلی بدیه نمیتونیم حتی یک شب اینجا نگهش داریم. بله. اگر بفهمن اول پدر تو رو در میارن. بعد همون رو تیکهتی کش میکنن. متاسفم، تو متأسفی چیکار کنم؟ آهی کشید و گفت عجیبه. دست روی دست خودش زد. باد سرد و تندی که توی باغ می پیچید، موهای او را از زیر روسری پریشن می کرد. نیدونه که مادرش مرده؟ نه هنوز. من صبح سحر گذاشتمش اونجا. هنوز بیرون نیامده. هیچ کس نمی دونه اونجاست. جز خالش. یک دقیقه هم نمیشه اینجا نگهش داریم. خون به پا آقام اومده. الان اونجاست. اگر به گوشش برسه خدا میدونه با اون اخلاقش چه خونی به پا میکنه اندوه و ترس او به زیر پوست جاوید هم اثر میکرد جاوید او را نگاه کرد دلش میخواست اتاق گرمی داشت و میتوانست او را از میان سوز و باد باغ به درون اتاقش پناه دهد برای اینکه کمکش کرده باشد گفت شاید دکتر منوچهرخان خان بتواند کمک کند یا فروغ زمان خانوم سایه خانم سرش را تکان داد اونها با ملک آرا قهرند همه با هم بد و کفیند از روزی که من رفتم اون حیات تا حالا هیچ کدوم نیومدن اینجا هیچی درست نیست جاوید گفت من میتوانم به خانه دکتر منو خان بروم ایشان کمک میکنند ایشان با اینها فرق دارند چه جوری کمک کنه میتواند مشخداداد را صبح سحر که همه خوابند بفرستد اینجا یا بفرسته پشت تکیه سر کوچه 40000 هیچ کس نمیفهمد و من کمک میکنم سوارشان میکنم و اگر شما هم لطف و کمک کنید یک چیزی به مشخداداد بدهید مشخداداد صاف آنها را میبرد قم یا خراسان به امید پروردگار صرایا خانم به چشمهای جاوید نگاه میکرد و گوش میداد آهی کشید گفت کاش همه در این خراب شده فکر و دل تو را داشتند جاوید گفت خوبی از خودتان هست. سرایه خانم گفت تو این همه دانش زندگی رو از کجا یاد گرفتی؟ جاوید سرش رو انداخت پایین. گفت از شما، شما خانم خیلی چیزها به من یاد دادید. من؟ خواست بگوید شما دل مهربان و ایمان پاکی دارید. اما فقط گفت جسارت و فضولی مرا ببخشید خانم. جسارت نکردی، لطف کردی؟ تو جان و زندگی خودت رو برای دختری، دختر که چه عرص کنم، برای مارمولکی که من می دونم چقدر از اون بدت میاد و نفرت داری به خطر مرگ انداختی. من از کسی نفرت ندارم خانوم، و لیلا یک بچه عرص و نفه و مارمولک هرچی خب گذشته گفت خانوم. آنچه درباره رفتن لیلا و خالهش به وسیله کمک دکتر نزهت عرض کردم انجام پذیر است اگر اجازه بدهید شریه خانم مدتی فکر کرد او را نگاه کرد باد روسری و موهای جلو پیشانی زردش را میلرزند. پشت سرش باغ خشک و امارت سوخته به او افسردگی شوم و بربادرفته‌ای میداد. گفت میدونی. من به نحوی خودم را مسئول و گناهکار این موقعیت میدونم شما من بودم که لیلا رو فرستادم اون حیات پهلوی خالش وقتی فهمیدم سکه های شما رو دزدیده بود و چغالی کرده بود که شما کجا فرار کردید جاوید یادش بود بنابراین به گردن خود منه که او را از این منجلاب و کسافتکاری بیرون بیارم گرچه خودش هم بلا گرفته توی اوین خیلی تقصیر داشته اما به هر حال ساکت ماند. جاوید گفت: شما در این بابت گناهی ندارید. شورای خانم گفت: به هر حال. او هم تصمیمش را گرفت. برو دم خانه دکتر همین امشب از قال من به او سلام برسون، بعد بگو فردا صبح سحر مش را بفرستد بیاید در خونه خودش، جلوی مطب خودش. فهمیدی؟ اینجوری کم خطر و ساكتتره. بعد خود شما هم صبح سحر وقتی هنوز هوا تاریکه رقیه بگم و لیلا را ببر تحویل مشخداداد بده. من میگم رقیه بگم هر طور هست امشب آخر شب از راه زیر زمین بیاد اینجا. یه چیزی هم بهش میدم به خداداد بده. خداداد اونها را میبره قوم میبره منزل یک حاد شیخ و هست اونجا میگذاره. مشخداداد خودش میشنسه و خودش بر میگرده. لیلا و رقیه بگم اونجا میمانند. تا بعد من فکری براشون بکنم. جاوید نفس راحتی کشید. چشم، چشم. سایه خانم گفت. اما تا فردا هیچکس نباید بفهمه، وگرنه وا ویلا. بله خانم، هیچکس. به دکتر هم بگو هیچکس هیچ حرفی نزنه. چشم، هیچ کس. برای محکم کاری از جاوید خواست برای او یک تکه تک کاغذ برگرد دارد مداد یا قلم و دواتی بیاورد جاوید دوید رفت اول تندی چراغ نفتی را روشن کرد بعد وسیله نوشتنی که داشت آورد خجالت کشید صندلی یا چیزی نداشت که خانم رویش بنشیند سایا خانم ایستاده نامه کوتاهی برای دکتر نوشت و چیزها را توضیح داد و سفارش کرد بعد نامه را تا کرد به جاوید داد تا چه زودتر به مطب دکتر منوچه خان ببرد. برای دیدن لیلا نرفت. وقتی نامه را به جاوید داده بود چادرش را سفت کرد آمد دم در و به احمد پسر قلومدی که پشت در ایستاده بود گفت که کلید قفل در باغ را به خود جاوید بدهد. از این به بعد جاوید دیگر امین و سربراه است و اوست که خانه را نگه می دارد. احمد شروع کرد نه نو بیاورد و دستور اکید حضرت اشرف را بمیان کشید. سایه خانوم به او امر کرد که دیگر فضولی نکند. احمد با اکراه قبول کرد و کلید را توی دست جاوید گذاشت اما برای او خط نشان کشید. سر شب بود که جاوید در باغ را بست و به سوی کوچه فضل فضلالله و مطب دکتر منوچه خاندوید. هوا سردتر شده بود و دانه های تک و توک برف در هوا پخش میشد. وقتی به مطب رسید، فهمید که دکتر منوچهر خان در مطب نیست. نوکرش سید علی که جاوید را می شناخت، به او گفت که دکتر برای صرف شام بیرون رفته است. چه وقت دکتر برمیگشت؟ سید علی نمیدانست. هیچکس، هیچ وقت هیچی چی نمیدانست. فقط صبر کن ببین چه میشود. مجبور بود همانجا بنشیند تا دکتر برگردد کار دیگری نمیشد کرد برف هم حالا تند و پرپشت شده بود و او بیرون خانه دکتر نشست و صبر کرد به فکر دوراندیشی ثریا خانم آفرین گفت و خوشحال بود که کلید پیش خودش بود و از نوکرها کسی نمی توانست وارد باغ خرابه شود 35 صفحه 155. دو ساعت برای دکتر منوچه خان انتظار کشید بدون اینکه نتیجهی بگیرد. روی پله های خانه دکتر زیر برف نشسته بود و سردش بود. دستهایش را به هم میمالید یا به گوشهایش می‌کشید. سید علی او را توی خانه هرگز راه نمیداد. داد. چون شنیده بود او بچه زرتشتی است یا زرتشتی بوده است. جاوید خودش دلهوره لیلا را هم داشت و اینکه ممکن بود اتفاق بیفتد. لیلا ممکن بود از ترس و تنهایی از زیر زمین بیرون بیاید و کسی او را توی حیات ببیند. جاوید نمی چه مدت دیگر باید صبر کند و منتظر بماند. سید علی گفته بود آقا با دوتا از رفقا و آقایون برای شام بیرون رفته بود. با جایی سرشان با مشروب ورقبازی یا قمار گرم شده بود. بعد از دو سه ساعت بیهوده صبر کردن تصمیم گرفت سری به خانه بزند و دوباره فوری برگردد. درزد و منظورش را به سید علی گفت. یادآوری کرد که پیغام مهمی از سوی سرایا خانم برای دکتر با خود داشت. از میان کوچه هایی که داشت با برف پر از گلوشل میشد میشد به خانه دوید. هنوز خبری نبود، او لیلا را گوشه زیرزمین کنار منقلش پیدا کرد که با گریه و اوقات تلخی و گرسنگی کس کرده بود و منتظر بود. جاوید نان و پنیر و اندک میوهی که سر راه خریده بود و با خود آورده بود به ویداد. تصمیم سریا خانم نیز مبنی بر فرستادن او و راقیه به گم به قوم به او خبر داد. بعد با چند جمله و تا آنجا که می با همدردی و نرمی خبر فوت مادرش را نیز به او داد. لیلا که بیست و ساعت اخیر را با گریه و تنهایی گذرانده بود از مرگ مادرش بد جوری شکست. جاوید به او گفت که خودش باید چه زودتر به منزل دکتر نزهت برگردد. به لیلا گفت که در جای خود بماند و چند ساعت دیگر را هم تحمل کند. گفت میتواند خدا را شکر کند که مادرش هرچه بود پیش از مرگ شنید که لیلا نجات پیدا کرده است. آنزان داغ دیده با راحتی فکر و رستگاری از جهان رفته بود و فهمیده بود که دخترش به زودی از تهران به جای امن و خانه بهتری می رود. لیلا سرش را بلند نکرد، به او محل نگذاشت، به گریش ادامه داد. جاوید با آن سخنان لیلا را باز به حال خودش گذاشت، از باغ بیرون آمد و دوان به کوچه شیخ فضلالله برگشت. کوچه ها زیر برف خلبت و خالی بودند، اما باز وقتی به خانه دکتر رسید، او هنوز به خانه نیامده بود. باز روی پله ها نشست، صبر کرد. دانه های برف را تماشا می کرد و باز به لیلا می اندیشید. هر وقت لیلا وارد زندگی او میشد، زندگی او پیچ عجیب و بدی میخورد و بلا و ای پیش می آمد. لیلا تلسم بود. از دیشب باز لیلا وارد زندگی او شده بود. با آمدن لیلا باز نیروهای شر و بدبختی بود که از دل سیاهی ها موج می خورد و می آمد. تلسم شومی که از این دختر، از این زن، از این هرچه بود روی او افتاده بود. شبی را به یاد آورد که لیلا آمده بود تا آنها را از خانه ملک آرا فرار بدهد. آن شب به مرگ مادر جاوید پایان یافته بود. دیروز هم مادر خود لیلا از بین رفته بود. ساعتهای شب می گذشت. جاوید نمی دانست. ساعت چند است. اگر دکتر امشب نمی آمد چه می همه چیز می ماند برای فردا؟ اتفاق دیگری نمی افتاد. دانه های برف میریخت و او هرچه نیایش و فروته بلد بود میخاند و در فضای یخزده کوچه شیخ فضل الله فوت میکرد. در این میان نگرانی کلی او بیشتر برای صرایا خانم بود و امیدوار بود جریان فعلی لیلا درد تازهی برای آن خانم پیش نیاورد. این چند ماه صرایا خانم بیشتر از آنچه که سزاوارش بود ناراحتی کشیده بود. بیماری مرموز اخیرش هم هرچه بود، از همان شب آتش سوزی آغاز گرفته بود. آن شب که حالش به هم خورده بود و دکتر نسحت به او چند تا استکان چای و مرفین داد تا خوابش ببرد. آن شب چه اتفاقی افتاده بود؟ امشب این دکتر کجا بود؟ سایه دو نفر را دید که از سر کوچه می آمدند. هر دو مرد کلا شاپو و پالتو داشتند و یکی از آنها چتری سیاه بالای سر هر دوشان گرفته بود. جاوید از جاش پرید و به آنها نزدیک شد. درست زده بود. یکی از دو نفر آنکه چتر داشت دکتر منوچه خان بود که با رفیقش خنده کنان در کوچه برفی پیش می آمد و دو مرد مست و شنگول بودند. جاوید جلو رفت سلام کرد. گفت پیغام مهمی از خانم دارد و نامه سریا خانم را که زیر پالتویش قایم کرده بود درآورد به دکتر نشان داد و دوباره آن را به توی بغلش گذاشت که خشک بماند. دکتر با شگفتی پسرک را نگاه کرد. در حقیقت انگار از دیدن جاوید و نامه و پیغام مرموز در کوچه تاریک تکان خورده بود. او اشاره کرد بیاید و تلو تلو خوران او را تا داخل خانه آورد. وقتی با جاوید در اتاقی تنها بود، کلاه و پالتوش را درآورد، آورد. سر و صورتش را شست، خشک کرد، سیگاری آتش زد. بعد نامه را گرفت. اما بعد از اینکه نامه را خواند خنده مستانه بلندی کرد و گفت، هاند. روی یک صندلی نشست، گفت. پس موضوع لیلا لگوری نمکرده تابستونی شازده است که سرای خانم میخواد از تهران فراریش بده. بابا شماها ما را ترسوندین، گفتم خدایی نکرده اتفاقی واسه خود خانم افتاده. جاوید گفت، نه خیر برای خانم اتفاقی نیفتاده. دکتر خنده های را از سر گرفت. جاوید گفت، ایشان منزل ملک آرا هستند. و بی افتاد که شاید بیماری بدی هم داشته باشد اما باز شرم فطریاش او را ساکت نگه داشت او هم از شادی دکتر خوشحال شد پیشامدهای چند شب اخیر را شگسته بسته برای دکتر بازگو کرد دکتر با دقت بسیار به حرفهای جاوید گوش کرد روشن بود که او آماده ی هر گونه کمک است دکتر پس از اینکه حرفهای جاوید را شنید، فوری سید علی را صدا کرد و او را به خانه فروف زمان دنبال مشخدادات فرستاد. خودش با خوشرویی پنج تا یک تومانی به جاوید داد که به خاله لیلا بدهد. یک دو تومانی هم به خود جاوید بخشید که پول زیادی بود. سخابتمندی و دست و دلبازی دکتر برای جاوید تازگی داشت و البته آن را به حساب فرمایشات و کرامات الکل گذاشت. بعد دکتر خودش هم تصمیم گرفت که به وزیر دفتر بیاید. گفت میخواهد به خاطر مرگ فاطمه بگم به دیدن خانم برود. اگرچه از خانه ملک آرا نفرت داشت و میخواست سر به شازده نباشد، اما وظیفه خودش بود به دیدن و احوال پرسی زن برادرش بیاید و سله ارهام به جا آورد. هرچه هم که دیر وقت شب بود عیبی نداشت. گفت فاطمه بگم برای سرعی خانم خیلی عزیز بوده و این پیشامدها برای او و حال روانی او صدمه کمی نیست. شاید لازم باشد دوایی به خانم بدهد برف هنوز روی کوچه ها میریخ که جاوید همراه دکتر به گذر وزیر دفتر برگشت نور امیدی که باز از غروب تا حالا در روحش سوسو میزد و تاریک و روشن میشد تا زیرگذر گذر و جلوی باق خانه سریا خانم دوام کرد اما بیشتر. در تاریخ زندگی جاوید، پسر فیروزآقای یزدی، در خانه های ملک آرا و دختر ملک آرا که مقدر بود هشت سال طول بکشد، شبهای هولناک و بد زیاد است. اما در لوح مغز او کمتر شبی، بدی و ناپاکی این شب عجیب را داشته است. شبی که آغاز بزرگترین دگرگونی‌های زندگانی او تا این تاریخ شد، این چکیده روایت پیشامت آن شب است. وقتی جاوید و دکتر منوچهر خان به تکیه گذر وزیر دفتر رسیدند، برف همه جانشند.